با تشکر از شما که با رادیو البورت هم هستید در ای زمان مهمتن این زمان مهمترین عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سهم شما عزیزان میرسونم گروهی از مهاجران که قصد عبور از مرز سروستان و ورود و کرواسی را داشتند در مرز متوقف شدند این افراد که بیشتر آنها از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند روز جمعه از شهر بلگراد به سمت مرکز کرواسی به را افتادند. آنها خواستار بازگشایی مرزهای بالکان برای رسیدن به کشورهای اروپای غربی هستند. به دنبال ممانعت پلیس از ادامه حرکت این افراد، بسیاری از آنها به مرکز پناهندگان در شهر سید در شمال سروسان رفتند. بنابر اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، حدود 6400 مهاجر که از کشورهای سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان هستند در سروستان ثبت نام شدند اما به گفته سازمانهای محلی و غیر دولتی تعداد این افراد نزدیک به ده هزار نفر است با بسته شدن مسیر بالکان دریای مدیترانه تنها مسیر باقی مانده برای مهاجران و پناهجویان برای رسیدن به اروپای مرکزی و غربی است تنها در روز دوشنبه بیش از 1500 مهاجر با قایق وارد ایتالیا شدند کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آمار مهاجران ایرا که در سال 2016 از مسیر دریاب اروپا رسیدن 340 هزار نفر اعلام کرده است سفیر استرالیا در تهران 928 مهاجر ایرانی در کمپ ها به سر میبرند. حدود 551 پناهجوی غیر مجاز ایرانی در کمپ های ادارین مهاجرت داخل استرالیا ساکن هستند و 377 ایرانی نیز در کمپ های مانوس و ناورو به سر میبرند نیروهای امنیتی و نظامی ایرانی و استرالیا در عراق و سوریه ارتباط نزدیک و تماس مستقیم دارند تا بتوانند از هر نوع سوء تفاهم اجتناب کنند سفیر استرالیا در تهران که به دعوت ایسنا برای مصاحبه درباره پناهجویان، معاملات اقتصادی ایران و استرالیا بعد از برجام و بحران خاوری میانه به این خبرگذاری رفته، میگوید کشورش برای پناهجویان ایرانی که به محافظت نیاز ندارند و درخواست پناهجویی آنها رد شده، هایی را پیشنهاد می‌کند که آنها بتوانند به ایران بازگشته و با کمکهای مالی استرالیا بتوانند زندگی جدیدی را در ایران از سر بگیرند. به گفته او تعداد ایرانیان در کمپ‌های اداری مهاجرات داخل استرالیا 551 نفر است و 377 ایرانی در کمپ‌های مرکز مرکز پروسه درخواستی منطقی شامل 271 نفر در مانوس و 106 نفر در نارو بسر می‌برند بخشی از صحبت‌های او درباره مسائل امنیتی و نظامی بوده است او با اشاره به اینکه 300 نیروی ویژه استرالیا وظیفه آموزش نیروهای عراقی را به عهده دارند گفته شاید خیلی مفید و به جا نباشد در مورد جزئیات همکاری نظامی بین ایران و استرالیا گفته شود اما میتوان گفت نیروهای امنیتی و نظامی دو کشور در ارتباط نزدیک و مستقیم هستند تا بتوانند از هر نوع سوء تفاهم و مشکلاتی که در اثر سوی تفاهم ایجاد می شود اجتناب سفیر استرالیا در تهران همچنین با اشاره به روابط تهران و کامبرا پس از برجام با ابراز خوشنودی از توافق اتمی گفته حجم معاملات دو کشور در سال 2015 حدود 333 میلیون دلار استرالیا بوده اما هنوز آمار مربوط به سال مالی 2016 در دست نیست ولی در بخش صادرات و بیمه توافقهای خوبی امضا شده او همچنین گفته بخش‌های خصوصی ایران و استرالیا در زمینهای هوا نوردین، نفت و گاز کشاورزی و توریسم همکاری‌های را آغاز کردند و با بهبود روابطه که دولت ها و گسترش سفرهای توریسی ایمن مردم متوجه می شوند جدا از مسائل مثل بیکاری و تورم در ایران دیدنیهای بسیاری وجود دارد یک خبر از آلمان آلمان بیش از دوازده هزار پناهجوی افغان را پس می برستند افغانستان چلان بحرانی ناامن است با وجود این وزارت کشور آلمان از دوازده هزار 539 پناهجوی افغان خواسته که این کشور را ترک کنند. وزارت کشور در پاسخ به پرسش حزب چپ های آلمان گفته است که حدود 5 درصد از افغان های ساکن در آلمان باید این کشور را ترک کنند. طبق آمار آخر سپتامبر امسال حدود 247000 شهروند افغان در آلمان مقیم هستند. این تصمیم را وزارت کشور در نامه خود چنین توضیح کرده شواهدی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان در دست نیست خطرات برای افراد غیر نظامی به نسبت سال گذشته تفاوتی نکرده در این نامه آمده که در شهرهای بزرگ افغانستان امنیت برقرار است از اول سال جاری تا کنون تقاضای اقامت 27 پناهجوی افغان در آلمان رد شده و آنها به کشور خود اوت داده شدند در سال گذشته 2015 نیست 9 شهروند افغان از آلمان دیپورت شدند. شمار افراد افغان که از مقررات پناهندگی بهره‌مند می می‌شدند از هفتاد هفت و نیم درصد در سال گذشته به حدود و نیم درصد در سال جاری افت کرده است. از آنجا که وضعیت افغانستان روی هم رفته ناامن است، اخراج شهروند افغان, افغان با با واکنش‌های منفی از نیروهای سیاسی آلمان روبرو شده. شاد و تندرست باشید.